مرا به و عشقان فضول عیب کند که اعتراض بر اسرار علم غیب کند کمال سر محبت ببین نه نقص گناه که هر که بی هنرفتد نظر به عیب کند ز اطرهور بهشتان نفس براید بوی که خاک می کده ما عویر جیب کند چونان زنت ره اسلام غمزه ساقی که اجتناب زه صحبا مگر سحیب کند کلید گنج سعادت قبول اهل دل است مباد ان که در این نکته شک و ریب کند شبان وادی ایمن گهی رسد به مراد که چند سال به جان خدمت رو کند زدید خون به چکا نه حافظ چو یاد وقت زمان شباب و شو کند زدید خون به چکا حافظ چ یاد وقت زمان شباب کند